بسم الله الرحمن الرحیم کلسه هفتم کلاس فقه مقارن 23 آبان ماه 1401 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیه محمد و آله تاهرین الله رسول محمد و آله و آله تاهرین یکی دیگر از مسئولی که در فقه مقارن فقه مقارن مستحدثه مورد نقض و ابرام فراغونی قرار گرفته بحث های زیادی راجبه شده هم در فقه امامیه خودش و هم فقه آمه خودش و هم کلیت آمه و امامیه بحث بینست. بینه بیمه یا گایی آقا تعبیر میکنم بهش به صنعت بیمه یا گاهی با تعبیر میکنن به عقد بیمه که به عنوان یه عقد باشه. که در زبان عربی بهش تامین میگن عقد و تأمین. فارسی خودمون میشه بیمه در عربی به نام عقد و تأمین مطرح هستش. ببینید ما هر چقدر جهان گسترش پیدا کنه صنعتی بشه تجاری بشه. حقیقتا نیازمند یک هایی هستیم در جامعه نیازمند یک پشتوانههایی هستیم که در صورت بروز حادثه یا در صورت بروز یک درواقع اتفاقی یه جایی باشه که بتونه برای ما جبران کنه این خطرات رو بالاخره چه خطرات عرضی و سماوی چه خطراتی که ناشی از تداخل بین انسان میشه تضاروب بین امور میشه نیازند رو همش الهی باشه مثلا مثل زلزله و سیل و به رعد رد و برمایینا مثلا نه گایی تو خیابون جامعه شروعه دو تا ماشین با ما هم برخورد میکنن یا یه ماشین میزنه به یه فردی خوی اینا یه حادثه از خطر الهی هم نیست منصوبه به عرض و سما نیست یه بیدقتی باعث بروز این حادثه میشه لذا برای این کار چه فکری میشه کرد؟ هرچی جوامع گسترش بیشتری پیدا کنن این نیاز هم بیشتر میشه یا نیم فقط به امروز گذشتم همین بوده مثلا در گذشته مثلا که سیستم حمل و نقل که یکی از در واقع های پیدایش صنعت بیمش و سنعت در واقع بیمه را شکل داد بحث حمل و نقل مثلا حمل و نقل دریایی که اولین بار با حمل نقل دریایی در واقع به شکل امروزش اومد خب کشتی باری رو میزنه از یک کشور به یک کشور دیگه این وسط حادثه رخ میده حالا چه دزدان دریایی بیان این کشتی رو مورد تعرض قرار بدن چه طوفان و این چیزها چیزا باعث غرق شدن این کشتی بشه یا از این بالاتر یه ذره قبلترش برگردیم در زمان قبل از بعثت پیغمبر حتی خب افرادی بودن که راهزن بودن مثلا از یه جا به یه جای دیگه یه کارمانی که داشت حرکت می‌کرد راهزنا می‌بدن اموال اونجا رو نمی‌دونم بالاخره با قتل و غارت هم راه بود و اموالو می‌دزدیدن بالاخره یه چیزی می‌خواست که این رو یک پوششی بده که اگر حادثه ای پیش اومد این رو جبران بکنه تو بعضی از نقلهای تاریخی داریم که در زمان وجود نازنین پیامبر اسلام خود در دوران قبل از بیست پیامبر خود پیامبر و بعضی از جوانان اهل بنی هاشم اینا میمدن حتی پولی رو اخذ میچردن در برابر گرفتن این پول نوعی محافظت میکردند که امروزه بخوایم مثلا یه بازخانی بکنی یه چیزی شبیه بیمه بود پولی رو میگرفتن میمدن در واقع محافظت میکردن یه شبیه سازی مثل صنعت بیمه امروزیه خب امروزم هم همینجوره ما یه نفر داریم بیمه گرد یه نفر داریم بیمه گذار این میاد حالا ماشینشو خودشو ما یه بیمه عمر داریم یه بیمه درمانی داریم یه بیمه ماشین داریم و انواع مختلف که که به ما یک صنعت میشه میاد طرف یه پولی رو میده در برابر این پول اسطلاح یه بیمه میکنه حالا چه خودش رو چه خونش رو چه ماشینش رو یا این باربری ها مثلا بار از این شهر میده به با اونش بارش رو و با در واقع نمونه مختلف میاد بیمه میکنه حالا بحث اینه این پولی که این وسط رد و بدل میشه یه نفر پولی رو میده به این شرکتی اون شرکت میاد بیمه میکنه حالا شخص رو درمان و ماشین و انوار رو. آیا این مشروعیت داره یا نداره عادت دادن این پول و این عقد قرارداد که بمون یک قرارداد بگی مشروعیت داره یا نداره خب هم تو فقه شیعه هم تو فقه اهل سنت محل اختلاف شده یعنی فتاوا کاملا با هم مخالفند دو گونه فتوا داریم یعنی اگر شما بگی مثلا جایز نیست خب جایز نیست دلیل باید بیاری. بگیم جایز هست بگیم عقد عقد صحیحه باز باید دلیل بیاریم چه نوع عقدیه یعنی اگر این در واقع قرارداد بسته میشه این عقد بسته میشه چه نوع قراردادیه تحت مثلا یه قرارداد باید یه اسمی داشته باشه مثلا حبست بیعه این چیه این باید دلیل بیاریم هم اهل سنت هم شیه محل بحث دار این هست که می نیاز تمام قراردادهایی که ببینید آره دور در ببینید همه بحث اینه که آیا عبود این عبود توقیفی هستن یا امزایی توقیفی هستن یا نبذاری؟ توقیفی که تا مرمادریت تو بیانات علمه ها گاه یکو توقیفی میگن در مقابل توثالیه گاه یکو توقیفی در مقابل توثالیه یعنی چی؟ یعنی میگن این عمل است یعنی در مقابل توثالی یعنی, یعنی, یعنی به امارت و چی میشه؟ بگی؟ تعبدی میشه تعبودی میشه گانی اومد میگن توقیفیه اینجا یعنی باید مثلا یک یعنی, یعنی باید جزء همان عقود معهوده باشد یعنی چی؟ یعنی عقودی که در شر بر نامورده شده مثلا چی برده شده؟ بگو مثلا بی رحم اجاره هبه بفهمایید نکاه و سایر عقودی که معرفی شده بحث امضایی نه من این عقد امضایی یعنی در واقع تدبیر شعر همانند تدبیر چیه بگی عرف اغلاس یعنی اگر رو پذیرفتند شارم شروع کنه؟ امیزاش می‌کنه یادتونه تو ارسوفه یه تربیری داشت می‌کنه بله رئیس سوال بگی مخوام اغلا اگر می‌پذیرن رئیس اغلا به بحث ما که عقد بیمه یا در عقل بشه عقد مبناش اینه اصلا کلدر شما بیاری ببینید جزء اینو رو برخوایی ببری جزء تحت او توقیفی ها یا ببری جزء نمیزایی اگه ببری جزء توقیفی ها بابا با این جزء قهود معروبه ما نیست اصلا ما همچین عقلی در لسان و رمایاتمون در آیاتمون به نام عقد و ما نداریم پس چون نداریم این عقد عقل صحیحی نیست اما پایش امزاییم، بگیرم، تدبیر شاره تو این بس مثل تدبیر، در واقع، اقلال یعنی اگر اقلال یا عالم چیز رو پذیروفتن، منع عقلی نداشت پس ما هم این رو میپذیریم در بین اهل سنت، خب، این, این مقدمان رو داشته باشید تو طول تاریخ این بحث خیلی مورد ابتلا نبوده یا اگر هم بوده پیشینهای با این نام نداشته اما اخیرا دیگه این بحثایی که در واقع صده اخیر از که دیگه تجارت اومده صنعت حمل و نقل اومده گسترش زندگی شده که مقدمش رو عرض کردم این بحث در واقع رونق پیدا کرده میگن اولین عقدی رو که در کشورهای اسلامی به عنوان بیمه که عقد و تحمیم بود در زمان عثمانی شکل گرفت که در, در واقع صنعت دریایی که بود اینا می‌بدن اون کالا رو در واقع چیکار می‌کردن بیمه میکردند که همون موقع فقها صداشون در اومد چه فقهای امامیه چه های فوقهای... آمه. هر دو ابتدائن فتوا دادن بر حرمت بیمه یعنی هم در در واقع فتاوای اهل سنت فتاوای ابتدائیشون هست هم در امامیه هستش که اینها بیمه رو به نوعی یه عقد فاسد یه عقد حرام معرفی می بعدا بهشون می که خب آیا مطلق حرامه؟ عده قائل به اطلاق بودن گفتن گفتن این عقد مطلقاً حرامه عده این قائل به تفصیل شدن بعضی از گناهاشو حرام دونستند بعضی از گناهاشو حرام نمیدونستن گاله تو خلال بست باهاش مواجه میشین خب اونایی که میگفتن آقا این بیمه حرامه اشکالاتی رو مطرح میکردن چند تا اشکالات مهم بشه ما مطرح کنیم و ببینیم چیه اولین این اشکالی که مطرح شده اشکال قرار قرار نصور جهل آها این یاد باشه انصور اصلی قرار قرار چیه؟ جهله جهالته اینو تو تو دشهر گوشه ذهن تو بریم بیان مطلب میگفتن آقا وقتی شما یه چیز رو بیمه میکنی مثلا بنده ماشین رو بیمه میکنم. در برابر چیه؟ یا شما نه معلومه چقدر حادثه میشه چه زمانی حادثه رخ میده، م... کیفیت حادثه چجوریه مبلغ خسارت کمه زیاده متوسطه جانیه مالیه میگفت همه اینها برای شما چیه؟ مجهوله و چون جهل یک طرف عقد قرار گرفته این عقد میکنه عقد بگید؟ قراری و عقد قراری عقد صحیحی؟ نیست. پس اولین اشکالی که به این میگن عقد شردیه عقد قراری هستش چون جهل وجود داشته باشد از این چیجوری میتونید جواب بدید به نظرتون؟ فقها همه ود نه این قرر برش وارد نیست این اشکال چهجوری میشه جواب داد به این ببینید قرار اون سال اصلیش چیه؟ جه. جهله آیا واقعا اینجا چه شخصی که من ماشینو رو مثال میزنم که تو زهن اون ببونه شما الان میرید مطورتون رو یا ماشینتون رو بیمه میکنید یاقا سه میلیون تو هم بده یک سال خب حالا من هم بگید اینجا کجا جهل وجود داره ببینید طرف بگید سه میلیون در مقابل چقدر ما سی میلیون خسارت نهایتش بگید آها میگه آقا تو سه میلیون به من بده من تا سقف قشنگ تو قرار دادم از دیگه تا سقف سی ست اگه بهت خسالت وارد شد با این شرایط تازه شرایطی هم میذاره آقا مثلا سبوری نباشه تصدو هم نباشه آقا چی نباشه چی نباشه چی نباشه و به هم میگی کجایی اینجا جهر وجود داره صحب. هیچ جهر نیست بله قدر اشکاله میتونه مانع از این انقاله یک عقلی بشه ولی به شرطی که انصار جهل و جهالت باشه در اینجا هیچ جهلی وجود نه. نه و قص علاوازه افصاله افصاله از این بود باش که تعلیق داره این این معلّبه اوشه یه ایزن او دیگه دو برد یه اشکال دیگه اوش رفت چون درن انصار جهل اوشه یه اشکال دیگه که عقل باید چی باشه؟ همینجا دومی اشکال بگیم همینجا باید معلق و معلق باشد منجز باشد بیا با اینجا مناسید معلقه دواره جواب دیگه یا نداره که ما ها میگیم که اگر شما خسارتی دوباره میگیم تا این فقط برای هم حاصل شد شما چگاه کن تحقیمیم خسارت بکنم در راقه تحقیم دوباره جاییه که حدود و دستو چیزی مشکل هست. نباشه و از اینکه میشه گفت اینجا عقل معلله نیست عقل بلکه ذ معلله یعنی خود که در اشکال داره خود عقل عقل اصلا میلیون سیصد بده میون شد تموش حالا شرط استفاده از سی میلیون که و... آره حالا تازه از اوهیل خودم استفاده کردم یه زمانی که میگن آقا اصلا شما این 300 میلیون واسه شما یه چیزی میدی در مقابل که کسی دیگه اصلا همون موقع تعلیم از بین رفت. ای گفتی چی به دست میارید؟ اون امنیت آرامش. آم. شما در مقابل چی به کردید؟ او گرفتی؟ آرامش گرفتی. یعنی اوغدای عالم برای تامین چی بگید؟ آم. آرامش امنیتشون آیا نمیاد خسیه میکنن؟ خیلی بد یعنی همون موقع در واقع مرجست شد هیچ تحریح هم از به رفت این دیگه میشه در واقع یه فراتر از آرامش نه یا فراتر فراتر یه در بیران نمیشه را بودترشون او از اون در مقابل هم باشه اون کشو بشه ما آرامش نداد که یعنی یه تربیه آرامش تربیه یعنی اد خوب دلکت کنی اد باید برای شما چی داشته باشه؟ سمره داشته باشه این درست شد؟ ای دیگه من اومده تصادف اصلا نکردم تو تو سار اصلا تصادفی؟ نه. نشد پس سه میلیون تو من رفت باد هوا؟ بله اگه من یه تصادف میکردم می پولی میگرفتم ولی تصادف که نکردی؟ تو همه موقع که سه ملیونی دادی یه چیزی گرفتی یعنی اغلای عالم نسبت به آرامش نگاه نیجه دارانی یعنی برای او پرداخت هزینه یا تحویل آرامش شد تحویل دقیقی نباشه اگه بگیم مثل شما مثلا شما نمیگید مثلا شما مثلا نا کنید نه از طرف اون که هست چیزی ما در معامله میکنیم از طرف اون بود ببینید لوازم معروف هست نعمتان مکفورتان الامنوال وال اما امنیتهای پیدا میکنید دیگه یعنی شما امنیت حالا من یه پسوندش میگم روانی پیدا میکنید که شما میتونید مثلا این میدان مطهری با موتور راحت بری و بیای حبیب رو درست کنم چون آروم بشه حالت درامیه راحت نداره بینی نداده که مثلا اون بخواد به من بده و اطمینان خاطرش چرا اون میتونه به من بده من تضمینش رو بگم بله میشه اون مثلا این که به من میده اون اطمینان خاطر به من میده یعنی یه پشتوانه به من آره خب همین پشتوانه اینو می خوام بگم آرامش در بین در بینش نشه یه حالت نفسانیه باشه همون حالت نفسانیش مهمه دیگه, دیگه یعنی باشه ببینید باشه. یعنی میخوام بگم که این اصطلاحا میگن اقلای عالم این چنین عقدی را تعیید میکنن که انسان پولی رو بده در مقابلشی چی بگیره؟ آرامش بگیره الان شما مثلا, این مثلا... درخن، درخن آرامش یه چیز مادی نیستش که به شما بده بریزه تو جیبت که اون, اون, اون چی از آرامشه؟ اون آرامش یعنی که اگر روزی روزگاری شما تصادف کنی اینجوری نیستش که فرش زیرپاتو بخوایی بفروشی به طرف خسارت بدی شما مثلا الان خونتون بیمه سوزی میکنید خیلی راحت اگر رفتی مسافرت رفتی بوزن. اگر روزی نگر نگره آتیشگر بیان خسارت به هم میده اون امنیت هست اون آرامشه چیز مادی دیگه نیست یعنی همون امنیتی که اگر حادثهی رخ داد من جبران میشه در واقع خسارتی که به هم وارد شده یکی دیگه از جان رهن تنم خیلی دقیق رهن کرد آره بعد توی منجز شد دیگه بله منجز شد. این اصلا مرسن میکن. آره. میکنه آره تماشید یه چیزی گرفت همه موقعی ببین واقعا شما ببین تو خودتون بوشان. تو خودتون مراجعه کنی یه به قوله اپیسات حضوری یه روز موتورتون رو بدون بیمه سوارشی فرداش بیمهش کنید سوارشی میبینی اصلا اصلا نوع رانندگی عوض میشه آرامش پیدا میکنی دیگه این چیزی که انسان به دست میاره. اون حالتی که هست یکی دیگر اشکالتی که مطرح شده بعد از قرر اشکال اکل مال به باتله لا تأکل و انوالکن بینکن بل باطله. خب طرف اینجا میگه آقا من, من مثلا شرکت بیمه دارم میگم آقا سه میلیون به من بده من ماشینتو بیمه کنم درست شد خب من سه میلیون گرفتم میگه آقا در مقابلش چی داره میدی بهش؟ چون امکان داره این شخص تو این سال اصلا تصادفی بگی؟ نه. نکنه یعنی در مقابل پولی که من دریافت میکنم چیکار دارم برای اون انجام میدم؟ ببین، وجدانی رو بذار کنار را و امنیت رو. از نظر وزاره... کاری من چه کاری دارم برای اون انجام میدم؟ من پشت تو دفتر بیمم نشستم سه میلیون آن پول گرفتم درست شد؟ خوبم دارم پول میگیرم آقا هم رو بیمه کرد سر سال شد هیچ پولی از طرف هم تو جیب این آقا نرفت یعنی من پولی را گرفتم که در مقابلش هیچ کاری برای طرف... برای طرف مقابلم انجام ندادم طرف میگه این مصداق اکلمال مال به باطل اینو دوره چجوری جواب میدی به حد این با ترازی بوده یا نبوده یا شده آفرین هم ترازن هستش دو دوباره همون حرف قبلی بود رو تکرار میکنی این واقعا در مقابلش چی نداده این هم خود این در مقابل چیزی رو داده یعنی همون تعهد در مقابل... آفرین کلمه تعهد اون تعهدی که که شرکت بیمه میکنه یعنی یه چیزی رو به او داد پس اینجوری نیستش که من چیزی رو در مقابلش نداده باشم و یه, یه جور دیگه هم رو بیان کردن میگن آقا طرف چقدر پول داد سه ملیون خدا نکرد تصادف کرد چقدر پول میگیره 30 میلیون دارو باز تصادف کرد دیگه اما یه آدم چنده 400 میلیون طرف سه میلیون ماشینشو بیمه کرده موتورش بیمه میکنه میزنه به یه نفر مثلا طرف قصد نخاب میشه تو چشنشو از دست میده بیمیج... اه... یه چی میگیره کامه یعنی یه دفعه میبینیم به بابا 300 میلیون دریافت میمانه یعنی تو بعضی از حادثات ده برابر پنی برابر تا یه سقفی داره خب این پوله که اینابا میگیره این هنگه به مال به باطل میشه تو در چقدر پول ندی؟ سه تومن چقدر گرفتی؟ سی یعنی شما صد برابر پول گرفتی این مثلاق اکلمان پس باطن از دو طرف این شوهر رو میکنن چه از طرف بیمگر چه از طرف بیمه گزار نرست شد. یعنی کسی که بیمه میکنه کسی که بیمه میشه خب اینو چیچه جواب بدیم از دو طرفش ترازی رو نظر نمیشه جواب داده یعنی اولی چون ترازی تو مثلا سمن عزرا ترازی هست وقتی اول بده از راه ما میگه سمن عزرا این ترازی رو نمیشه اینجا به مول این واسه نیست این باشه ترازیش فایده ای نداره یعنی بهش درست نمیشه خوب و ما چیزی که جواب دوم شما بگید در وارد چیزی میگیره بکن جواب چی میگیره در مقابلش یعنی در واقع دوره همون حرف قبلی رو می‌زنی یعنی یک عقد اقلاییه. عقد اوغلاغیه از چه جرا اوغلاغیه بگی همون ایجاد بگی دوره امنیت و آرامش امنیت و آرامش هست در واقع این محتوای عقدشون بوده اینجوری نبوده که این به حال باز باشه تا به به من چخب بده بسته بوده باشه باش. یعنی که قلب بوده و این ع انترازه بودی مروده آما من از این چطاب رو می خرم؟ ببینید این خریدن مثلا ده هزار تومن به شما امروز روز بیدم صد هزار ده برابر درست شو آیا انترازه این انترازه رو هست؟ آقا این چطاب رو کفایی ده هزار تومن خریدم بیدم صد هزار یعنی من ده برابر سود میکنم این چون ترازن هستش مشکلی نداره فقط شما یه چیزی در مقابلش نداره که تو قسمتی که اصلا تصادفی صورت نگرفته میگی این که عقد چیه؟ قبلاهیه. یعنی در مقابلش طرف چیزی گرفته چی گرفته فقط اینجا؟ امنیت رو آرام می‌شوند لذا همین ببینید از این چون شما کنین اگر این حالت نباشه شما ببینید چقدر در اختلال در نظام زندگی میشه. یه جمله‌ای که از اهل سنت خیلی جالب نوشته بود. اینو کلی نشجع گیرتم برای جالب بود. فتوای محمد تنتاوی دانشگاه الازهر. یه شرکت دیمه ازش استفاده کرده بوده. یه شرکتی که ما بخوایم مثلا بیمه کنیم، آیا بیمه از نظر شرعی در واقع صحیح هست یا صحیح نیست؟ ایشون مثلا امام زمان رقیه السلام علیکم و رحمته الله یه مقدمه یه تشکر میکنه، میگه در مورد بیمه حالا ترجمهش میشه بیمه روابط بین دو تا شرکت کارمندان، وفات از کارافتادگی، بازنشستگی، این یعنی مساطیق دا زیاد در بازنشستگی ما خدا دیگه پدر بزرگم اون پدر داشتم پدر دا مادرم یعنی که سال عمر کرد ده سال. یهو تهران بازنشسته شرکتی بود. ما هم با شوقی می‌کردیم. میگفتن تو بعد یعنی موقعی که بازنشسته شد مثلا 42 سالش شد بازنشسته شد. بیش از یک رو برای شرکتی شرکت بیمه رو بازنشستگی از بس از زمان مثلا رضا شوم کهش رو تا مثلا سال ۸۰۰ که ایشو فوت کرد من هم پدرم هم پدر که هم ۸۰۰ فوت کرد خب ایشو میگن چی؟ بگم یه اول میگه برای میگه ناکنی بگه جواب اما در رابطه با سوال شما چند موارد زیر را بیان کنم میگه شریعت اسلام هر اقدامی که در راستای تضامن اجتماعی در میان مردم باشد تایید می خداوند متعال می‌فرموده به کجا در استرام کوه تعاون و نو علل بر و یعنی می تو بود دو هدف شرکت بیمه که عبارت است از تقویت اندیشه تضامن اجتماعی امری است که از نظر شرع و امر پسندیده و قابل قبول است به از نظر قابل قبول است سه بیگه هیچ کدام از در واقع بندهایی قرار داد که شما مثلا نمیشید دون قیل استفاده دو با شریعت اسلام در تعارض نمی باشند حالا با اون تیکه وسطش کار داشتم که استناد کرد به چی؟ هر اقدامی که در راست تضامن اجتماعی باشه میره تو مصداب تعاون و محلت برگرد تفا در از مصداب تعاون چیه؟ من بینست، من آرامش بده باشم مثلا دو, دو جریانات معنوی هم. من میگه آه مثلا همی یه نفر دیدید مثلا میگم بفرمیدی که مثلا خود صدق از یادم به اون مثلا همی مثلا طرف آبا بسته داره من میشنم درده دلشو گوش بگم این اصلاقه چیه؟ تعاون و ملند بیار. یعنی قاعده یک که باید یک قاعده فقیه دو تونه تو قرار فقیه همی تر مرون داشتیم اینو بحث کرده دیگه این بود یه قاعده است یعنی هر چیزی ضمن این قرار روید شرقی ها هم تعیید کرده در واقع میشه یک عقد قغلی که امنیت و آرامش میره مصداق تاغن و الان بره و تقوی هستش بعد حالا دو عدل اهلسانه دور اینجا رو مورد بررسی قرار دیم. پس این اشکالم اشکال واردی به بحثشون نیست اما یه اشکال دیگه که باز مطرح هستش پس شد قرار یک معلق بودن که حالا تو فیرستان تو بود اول گفتیم دو سه شد همین اشکالی که الان خوندیم به عنوان اکتمال به باطن چهارمین زمان مالم یجب زمان مالمیشه ببینید میدم اینجا رو زمانی انسان میتونه یک چیزی رو زمانت بکنه زمانی چیزی رو انسان زمانت بکنه که وجود خارجی داشته باشه تحقا پیدا کرده باشه مثلا آقا مرده میام یه یعنی بخاری رو زمانت بکنم یعنی وقتی بخاری باشون یه آسیدی ببینه من شرکت سازنده یکم اینو ضمانتش کردم چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده بقولم معلقه ضمانت کردنش اصلاً معنا نداره لذا زبان مالیجته بنویسمش منظور زبان هم آفرین یعنی چیزی که همین من امروز این چندومه اینو چندومه دوستان 30. سیه هشته چهارسته یک من میام زمانت میکنم چه چیزی رو من زمانت میکنم چیزی که همینز اتفاق نه. نه افتاده مثلا شاید در مثلا انجالی اینجا نیفت مثلا بیست و نه هفته چهارست دو اگر چون که حالا اصلا مالنگجه به فولیزا زمان صحیح نیستش این هم یه پیشتار آقایی چیکی رو به این جواب میدن میگن می اولا یه اصلا ضمانت زمانت نیستش که زمان خودش یه بحث مقبوله جدایه ما اصلا اینجا چیزی رو زمانت نمیکنیم که زمانت بکردیم یه اولا و ثانی هم دوره هم هفته رو بابا این زمانه ما نیست چون یک زمانت نیست دو ما اینجا یه منفعت اقلایی رو داریم زمانت میکنیم چی گفته نیستش؟ دوستان دبینید انصار مشترکی و همش همین اقلایی بودنشه یعنی اگر ما عقد رو مثلا امزایی میگیریم، میگیم آقا این عقود امضای عقود حسری نیستن دوستان بله بعضی رو چی میگیرند حسری میگیرن ین تا عقل بیشتر ما نداریم ما که حسری نمیدونیم که بچیم امای امضا یا تدبیر شاره مانند تدبیر عرفه تدبیر علف یا من دنبال چی هستم منفعت اقلایی که بگی مانع و ردع شرعی بدین نداشته باشد شما من شرعی راده پیلا نکردی اینجا آ اتفاقا اینجا این منفعت اقلایی داریم یعنی همه عالم هستی برای چی اومده؟ برای آرامش مردم و اگه قرار باشه این در واقع شما تو دونه رانندگی اگه سنت بیمه رو بردارن خو آرامش مردم گرفته میشه اختلال در نظام زندگی میشه خود اختلال در نظام زندگی مخالف شاید. بله شاید شما, شما مساله مقاصد شریه چی بودند بودن؟ حفظ مال حفظ نفس این دو تا بود لذا اگر شما بیمر نپذیری یعنی حفظ مال و حفظ نفس بهش عمل؟ الا اینکه که شما برید تحت یک قوانین دیگری این کار انجام بدید مثلا مثلا بیان دولتها چیکار چیکار بکنن بعضی این پیشنهادو دادونن یا ما این حرام ما چیکار کار کنیم یا با دولتها بیان مالیات بگیرنن از در مقابل مالیاتی که بگیرن همه نوع خدماتی که، مثلا شما میگی چی به شما مقابله؟ کلکت بیمه اینا بدن مثلا بیمه عمر، بیمه بازنشستگی بیمه اکار افتاده بیمه خسارت زلزله، سیل زل، نمیدونم، ماشین همه اینا رو چی بده دولت بده یعنی از تحت عنوان بیمه خارج بشه دولت ها بگیرن حالا یه دولتی دولت پولداریه یه دولتی پول داره، مثلا تا قطع. پول داره برای شما جمعیت کم، منابع، زیاد خیلی آینده هم کم مثلا، بگو آبا پول دارم بخوری تو بیا شما، هر دوست داری، با من، هر بچی به هموزان این تصادف کردی، خسادش من دولتی بخواه اینکه حالا باقید چیزی ندادم شد نه اینکه، یعنی، نیست. یعنی، یعنی، من هم را که هو هم مثلا ساعتی مثلا 5 ۰۰۰ یا بیا به تو با تو قرار 4 ولی شما بدونید من یه سری خدماتی به شما میدم یه خدمات شهروندی به شما من میدم مثل همین الان مالیات الان مالیات الان همه اقشار مالیات, الان. تلو تلو مالیات میدن ادار طلب آقا طلب شما شهر یه شما تو مالیاتی مالیات ها که کی مالیات آره شما مالیات میگید ولی مالیات نه، حالا شما مثلا میگید درآمد رو مالیات میگید بر خرید رو مثلا به چی میگیم به خرید ما مالیات حالا مثلا رستوران ها بعضی تو فاکتورشون اینا نه درصد مالیاتیه بر ارزش ولی خود اون شخصی به مالیات تعلق یعنی یه مالیات بسختی تا یه جایی نه بعد طلباش از 5 میلیون به بالاست آره 5 میلیون به بالا پس دوستان پس این اصلا ضمانم اول ضمانت نیست دو عمر مالیاتیه اینا این منفعت و قلایه هست حالا اگر کسی فقیهی حکومت کسی قبول نداشته باشه پیشنهادونه در واقع برا سراغ عنوان خدمات شهروندی دولت بهشون بده و الاگه دولت نده این خدماتو خودشونم بیمار از طرفی قبول نداشته باشن اختلال در نظام زندگی میشه و این در واقع با چالش ایجاد میکنه زندگی رو این از این داشت. نکته دیگه در واقع بگم اشکال دیگه معلق بودن بود که خب بحثشو کردیم میگه بعد معلق باشه میگی بابا اینجا در, در اون عقد هیچ تعلیقی وجود نداره یعنی در واقع ایجاب و قبول هیچ کدوم معلق نیست بنده به صورت منجز و او طرف مقابلم به صورت منجس هر دومون در واقع امضا میکنیم یعنی هیچ چیزیمون این وسط معلق نیستش در واقع با انزال تعلیق از بین میره دیگه یه سری اشکالات دیگه هم وجود داره مثلا میگن یعنی این عقد, عقد, عقد بیمه سفاحت توش خوابیده یعنی من بیا سه میلیون بگیرم از شما بگم اگر خسارت به وارد شد یه زمانی مثلا دست و پا چیه سی ست ملیون بهت میدم آقا این کار کار سه تومان بگیرم سی میلیون بدم جواب این خیلی روشنه دوستان معیار تشکیس صفاحت کیه عرفه آیا اون عرف به ای ای این کار میگه کار صفیحانه؟ یه کنم این کار صفیحانه است من سه میلیون بگیرم بگم اگه تو تصادف کردی بخواهده 300 میلیون بگیرم یا آدم صفیح این ای کار میکنه سه میلیون بگیره 300 میلیون بده این کار صفیحانه است جواب بیدیم یه ملاک استفاهت با کیه کشم نیستش؟ خوغلارش با عرفه عرف هیچ کدوم عمدی از کل این کاری کار صفیحانه نیستش یعنی مثلاق استفاهت اصلا نیستش منفعت چی داره؟ خوغلایی داره اتفاقا الان همه دوباره اینکه خودشون رو شوار کنن؟ بیمه کنن بیمه کنن پس این عرض عقد صفیحانه نیستش اشکالات دیگه ای داره که اصلا نیاز به بیان نیست بعضی میگن آقا این مصلاق نوعی قمار شبیه به چیه بیمه؟ قمار طرف قماربازه نمی کنه مثلا بیده میبره چند برابر یعنی آقا اینم شبیه قماره که در واقع چند برابر طرف در واقع میگیده اصلا تشبیهش به قمار دوستان اشتباهه انگیزه ی قماربازه چیه؟ بگید انگیزه قمارباز چیه؟ سود منفعت بدون هیچ آورده ای. اما اینجا انگیزه که این نیستش که انگیزه آینده نگریه انگیزه احتیاطه یعنی من به چه انگیزهی به شما سه میلیون میدم به انگیزه یه آینده نگری که خیابون یه شلو بود رفتم دچار حادثه و در واقع مشکلی نشم و که در واقع بحثای اخلاقی همی پیش میاد قمار همراه با خلاف شرعه نست داریم نسبت به قمار قمار همراه با ازترابه اتفاقا بیمه باعث کاهش ازتراب میشه یا افزایش ازتراب کاهش ازتراب قمار ولی باعث چی میشه؟ چرا تو قمار همش؟ ببینید یادتون ما شده دیگه از نیکوره مغزم استفاده بیترم که روان شناسی خونده. ببینید هر دیدید شخص خشم داشت خشم با همه طیفاش داره خشم دوستان از اخم شروع میشه پرخاشگری ضرب و شطف تا قتل این تیف خشم ما بهش میگی. اگه اخم روبرگردوندن میشه خشم تا تیف بالاترین نقطه تیف قتله همه ای اینها تو جریان قماربازی هست چرا؟ بعد دوستان یه میشه. باش همیشه هر کیو دیدید خشمگینه دوستان یه چیز به تومی دیگه بحث رمانشناسیمه دیگه وقتی تو خیابون داری رانندگی میکنی شما مثلا من برای خودم بارها پیش اومده بغ زدم یه روی افراد همید فوش میده خشمگین میشه من یه بار دیدم میدون رسالتو ولدی دوستان اون فرد قب او. خیلی عادی داشتم صبح میرفتم رفتم داشتم می تو میدون یه می ما دارم شبه بوقم یه بوق زدم آها یارو دنبال ما گذاشت من اه من دیگه اما ها سریع مثلا شروع کرد من توهین کردن و فشت من به خانومش هم کنار داره به خانومش هم اصلا دعوای چی دارن اینا خانوادگی دارن یعنی خشمش ناشه از یه اضطراب خانوادگی بوده کلن هر چی رو دیدید دوستان خشم شما خشمتونو فرو فرو بدونید اون چی داره؟ اضطراب داره اضطراب با خشم رابطه داره یعنی خشم نشانه ازترابه گمارواز معمولاً چی هم؟ خشم داره حالا به تیف مختلف خشم که کرد از همون اخیم کردن و ترشویی بگی تا قتلش ولی اتفاقاً بیمه زد خشم امنیت میاره برای انسان آرامش میاره پس کنار گذاشتن این دوتا مقوله با هم دیگه حالا خیلی بحث اخلاقی میشه مثلا قمار کینه میاره اداوت میاره دشمنی میاره ولی بیمه نه اداوت میاره نه دشمنی میاره اتفاقا محبتو رو میاره درست شد پس کنار گذاشتن این دوتا با هم دیگه خیلی صحیح نیست از بین فوقه های مجبستان. طول در واقع از معارف از ما جنابای سید کازم تبا طبع تبایی فقیهی بودش که قائل به حرمت بود یعنی حرمت بیمه اما تو بین معاصرین دوستان قائل به حرمت نداری. فقط اون که اینجا مهمه تحت چنو عقلیه تحت چنو عقلیه نگاه کنید اینجا رو این تیکه که خیلی مهم بود که اول هر وقت کردن عقود یا توقیفی یا امزایی البته توقیفی دو تا معنی دادیم همه درمانه درده ما نمیخوره اینجا در مقابل چیه؟ توسلی که اصلا موضوع بخص ما خارج میشه بعضی ها میگن عقود توقیفی به این معنی که عرض میمالن. یعنی باید جزء همان عقود چی باشد معنوده ای ما باشد احمد آقا ما در روایات مشخصه پس همون رحمه، اجارت، دیگه، نکاه، وقفه همین عقود معروفی که داریم ما، درست شد؟ میگی آها بیمه جزء این عقود نیست؟ پس بیمه صحیح، بگیر نیستش درست؟ اونا با مشکل جدی مواجه هستند. ما در اینجا در واقع قائل خیلی کم است که گرمزاریم به کازم ترون ترونی میگو توقیفی دیوی نیسته شد. اما شما امضایی گرفتیم از دارم بعضی اینجوری گفتن گفتن ما بیمه رو توقیفی میدونیم صحیح هم میدونیمش یعنی ببخشیم یعنی عقود باید اولا چی باشن؟ توقیفی باشن یعنی جزء هم رو عقود باشن و بیمن صحیحه بگیم ای چیزی به ما بینه نداریم که ای آها یه شما اسمشو گذاشتی بینه من یه اسم دیگه مم. این بذارم. من بی جزء مثلا چه عقلی قرارش میدم؟ آبا هبه بی جزء هبه در واقع طرفین این عقدی که مرده ولی تو بهش بیمه از عقل بیمه نیست بی این عقل چیه میگی؟ هبه این عقل هبه تو دوستان بعضی را با. تو دیمه می‌گفتن را تا دوستتر صورت بگیره یعنی شرکت دیمه از شما سه ملیون بگیره به شما مسئله در از بگیره یه خودکار میده یا بیا بیا بعد در موقع خودکارش خودکار شرط نخوزه دیگه هم اگر اگر زمانی کس حالت در کار نمیره یعنی یه عبدش رو چی بوده؟ روی خودکار بوده کلو شرطیه دیگه واقعا اینطوری این چیست بس می‌ بعض یا چون تو می فیبرد باشه یه باید یه اعود معروفه ما باشه بعض میبرن می برند جز اعود سلح میدونید سلحو بهش تو فیفرهش میگن؟ میگن از سلحو عروسون ابود. یعنی چهار به بود هر هرچه گیر میکنن سلح سلحانه چطوری کفته برای نه سلام علیکم سلامت, سلامت باش قرآن یه بسرهو در فعل بهش میگن عروسل اوود سرآمد همه اووده یعنی هر جهت گیر میکنه میبره جوازه سولور پس این طایفه از فقها دو دکه به تو بگم چیه شفظای عصرات چون این دو دکه میشترم درست داری آخره شده بایدیم دیگه ها عصران شما بحث این بود که در فکر مبارن مبارن مصادر مستحدثه بحث بیمه بحث میشه که به عرقی داشت میگن عبد و تحمیل که با رفقه آمدیم اشکالاتی که بر بیمه وارد میشد زمان مال جب، قرارداد تعلیقی بودن مال به باطل قمار بودن زمان مال لمیجه بررسی کردیم و به جوابهایی رسیدیم ولی در موقع هم همه چالش هایی که تو اثر پیدا میشه مثلا این تقسیم که عقود هستند قراردادها الزامی یا توقیفی هستند توقیفی از اینجا به این معنا ها نه این بالا توسل در قول توسلی نه و یه همون موقع ده باشن یعنی اگه من با شما یه قرارداد حتما باید که عقودی که در شهر اومده باشه درجاری او عقودی نام برده شده باره دوستان معلومه مثل اجاره مثل رهن مثل بی مثل مزارعه مزاربه، مناقصه وقف هبه صلح باز یه آره آقا هر قراردادی اگر می‌خواد محکوم بود و مهر صحت بخوره الزاما باید داخل در ای مثلا این دست از تو بحث دیوه میگن اما بیوه یه قرار داده میگیم چه قرار داده؟ میگرده حالا پیدا ادیه میگن جوزه چیه؟ هبس ادیه میگن چیه؟ صلح اما اده میگن مثلا که رفته باید این باشه؟ این اینا خداوند مطال در باب معاملات امضا کرده تدبیر که رو برفو. به شرطی که محادثه با شهر نباشه شهر اومده برای اونش گوزا یه خطوط قرمز رو گذاشته تو هر معاملی مثل ربا ربا خط چیه؟ احلالا هول بی بحرم. بحرم. تمام این خط قرمز نمید تجار دنبال هم چی باشه؟ ترازن باشه این خط قرمز نه. با هر عقدی صحیح هست الا عقودی که تو این خطوط قرمز من نه وثلا تو نگاه خطوط قرمز درخودش گذاشته تو بین خطوط قرمز گذاشته تو رحن خطوط قرمز گذاشته بیا آها عقد تعمین یه قراردادیه هر قراردادی باشه که تدبیر عرف باشه شارم تدبیر را توسان قبول میکنه الا وارد خطوط قرمزش نشه آقا عقد دیمه خطوط قرمز داره؟ هیچ چیه؟ یه قراره؟ جواب بدهیم قرار نیست صفحیه؟ جواب بدهیم صفحی نیست زمان ما لن زمان ما نیست آقا نوعی قماره؟ قمار نیست پس نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدوم از اون خطوط قرمزی که برای شهر حساسیت داره جز نیست اصلا شما بیا یه حرف جدیدی بذار به بیمه یک عقد مستقله الزاما داخله در این قود نیست چون دوستان هم کنو رو میگی؟ چی میشه؟ اشکال همست واقعا؟ تو هم نداره پس ما فوقهای معاصر اومدن قائل شدن که بیمه به عنوان یک عقد مستقله آقا سمرش کلی از اولا جلسه تا را صحبت کردیم این یک عبد اقلعایی منفعت چیم داره؟ اقلعایی بهترین منفعتش هم امنیت, امنیت و آرامش کاهش ازتراب در انسان با گسترش روابط درست شما؟ این احتمال هست در واقع نوعی دوستان احتیاطه <تصفيق> چون تضاهم که زیاد میشه آخوند دیو فرختت لدینش. رو مان تو احتیاط میشه این احتیاط این آینده در نگری دوستان. پس در مورد چه چیزی بهتر از این مراقبه؟ پس میگیم ما باز میشیم این عقد عقده امضايت تدبير در صحت این عقد همون تدبيره. وغلا و به شرطی که وارد خطوط قرمز نشه دیدیم خطوط هم دام جوونه اشغال بود یکی پس از دیگری جواب دادن اما چه کنیم که هم در بین شیعه هم بین اهل سنت کسانی بودند که اینو قبول نداشتن مثلا من تو اهل سنت بخونم براتون ف... چند تا از فتاواشون رو ببینید عبد المنعم الرفاقی اینا رو تو راحتو هم گرفتم میگه بیمه بخشی از بیمه حرام است مثل بیمه عمر میگه به دلیل میگه چرا بیمه بیمه عمر میشه؟ آره میگه به دلیل مشتمل است بیمه عمر بر فریب قمار ربا خوردن مال دیگران بدون توجیه شرعی بدون توجیه شرع سلام شما دور عبد العزيز بنباز باز. بیمه عمر و مملکات حرام است به دلیل احتمال بر فریب سال الوند بیمه عمر حرام است به دلیل احتمال بر ربا قمار و مشهور بودن زندان کار کردن این جالبه زندان کار کردن در چنین شرکت ها کمک به معصیت و تعامل و علل در و تق و بلا تعامل علل بیا تازه خودش که حرامه ایش نداره شما می‌گید حرام سعود بن عبدالله میگه بیمه ماشین به دلیل تجاری بودن آن حرام است حرام است چرا چون مستلزم فریب است بله هیئت افتاع دانشگاه ابن اخسند نوشته بیمه درمانی حرام است به دلیل وجود قرار اونم نوشته تو برداشت غرر فاحش چرا غرره میگم من تو کلی میگم اگه این روزی روزگار بنیس شدی ویه این مشغول دیگه معلومه چه مریضی چه دار چه چیزی هست ناصر الدین البانی میگه بیمه ماشین و اشخاص حرام است چون گراردادیست شبیه به قمار و شرکت بیمه بدون تحمل زحمت قابل توجهی انبال بیمه گزاران را تصرف باهم ما موتور داریم پنجت سه بدون هم میگیره بیمیدیم تصرف کرده در اعمال غیر. در مقابل این یه همسونه دوباره یک ایده هستن که بیمه را حلال میتونن مثل دکتر علی جمع مفتی اعظم مصر در واقع ایشون بخونم برای تو جواب استفتاشو میگه چون بیمه با انواع مختلفی که دارن چند جواب داده با انواع مختلفی که داره جزء معاملات جدید است یعنی عقود چی با جدید امزایی جدید. آره جدید امزایی مستحدثه جدید است و هیچ نست شرعی راجب حلال بودن یا حرام بودن آن به دست ما نرسیده و محکوم به اجتهاد میباشد میگه نه نصی بدی میگه حلاله داری میشه بحث اجتهادی در واقع سالمیه میشه و به مصداق آیه شریفه تاوب و عل البر و تقوا در واقع صحت آن قابل رو که شما خوندم تنظیم دوره استردادی شرکتش استرداد که جواب بده میگه ما برای جواب این سه نکته می‌توانیم یک. میگه شریعت اسلام هر اقدامی که در راستای تزامن اجتماعی بین مردم باشد تایید می‌کند. ضمانت اجتماعی داره. میگه به مصدق و تعامل علی‌البرد حرف. دو. دو مکانیت شریعت. با آفرین. حالی نمیگه ولی سه. هدف شرکت بیمه تقنیت اندیشه تضامن اجتماحی و هر امری پسندیده از نظر شهر و عقل بگه آقایی همونه هم عقل زنگش میکنه هم شهر رو سه به هیچ کدام از قراردادهای پیدست پیدست نظر پیدست و استفداست مقالبه با شمیهت دوستان پیداشه یه دلیلشون نوره اندوستانت در, در استفرد چیه؟ آقا مسائل مرسله، به مرسله، بخونه براتون میگه رعایت مسلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه در جایی که نصف خواستی وجود ندارد، میتواق قا... می قاعد مشروعیت حقدش شد؟ بیمه شد استحسان، میگه بر اساس این قاعده، در جایی که با قیاس یا ماهده کلی یا دلیل دیگر می‌تفان کنیم شرعی را استعباد کرد چه استعباد می‌کنی؟ می‌گه اما چون عدم مشروعیتش مخالف مساله چی؟ بگی؟ شرع مصالح جامعه از این راه می‌تفان قائل به چی شد؟ سه هم بگی تو بگی این حرامه چه اتفاقی می‌فته دوستم؟ اختلال نظام با خودمون تو شیه می‌گو نظام. ما یه تو شیر مقاصد شبیه هاک، شری. دو تا مقصدا چیه چیه؟ حفظ جان، ما حفظ مال. یه دمیگم بشه اضافه، حفظ نفس. خب اگر این نباشه، اینها به خطر می‌افته. پس دوستان، عقد بیمه هم تو اهل صادر همش موافق و مخالف داره. مواصرین هر چی داره جلو دنده قابل چیش میشن؟ جواب. جوازش، و اینو به یه عقد چی می‌دونن؟ مستقل امزایی چون منفعت چی داره؟ اوغلایی داره بلکه اعظم و منفعتن هم استش. منفعت در واقع من رویی بیشتر از منفعت مادیه که احتیاط و آینده امنیت و آرامش داره و کاهش ازتراب در جامعه میشه دوستان خب این هم از این نکته خب تا همینجا بمونه برقش انشالله برای بقیه یه بحث دیگه رو شروع میکنیم برای هفته آینده استالالله اکدام محمد و عالم هم چی؟ موارد. ای قابش رو عوض کرده قابش عوض آره بابا قابش عوض کرده, کرده. این اصل ساله موارد. از سال نوودو وذار باید